چو لحاف روی برادر بدید بدانست که از کارزار را به در و از درد و او خیره شد. جهان پیشی چشمن درش تیره شد. شدند آن زمان خسته هر دو سوار. به شمشیر کردند پس کارزار. من اینو پس پیش پیشنهاد دادم اگر اینطور بخونیم درست میشه. به شمشیر کردند پس کارزار. ببینید بیته پیشین رو بکنم بدر و از درد و او خیره شد جان پیشی ششمندرش تیره شد به شمشیر کردن پس کارزار شدن دان زمان خسته هر دو سوار جایی ب... این مثله ها یعنی لطها باید عوض بشه فکر یعنی پیشتر از اینکه کارزار بکنن چطور خستش میشن باید فقط کارزار بکنن تا خسته بشه. خسته یعنی مجلو مجلو یک هایک یک هایک ناگهان یک هایک ناگهان در گفتار تدوسی بسیار مده و در زبان امروز هم میگن که یک نغافل یا میگن یک خوردن یک خوردن یه چیزی که ناگهان یه چیزی میبینه یک خوردن و یک نغافل هنوز از یک هایک واقع موده با تلافظ درسته یک هایک یک هایک برو گسته هم دست یافت به خینه چنان خسته اندرش به بگردنش بر زد یکی تیغ تیز براورد ناگاه زور راست خیز. سرش زیر پای اندر آمد چو که آید همین زخم چوگان بروی. این گویا که زخم و ضربه چوگان خورده بیه گوی و همونطور کرد روی زمین. چونین این است کردار و گردان سپر به بردز پربرده خیش مهر. چون سر پای یابین گست. اگر پا جویی سرش پیش توست. این در حقیقت سوکواری فید و خمیده به زین اندرون همی اسب و همی خون. به و بر تیر خاک سراسر همه تن، شمشیر، چاک گسته همه. گسته هم دو پرلمان رو کشت خودشم الان نزدیک و مرگ دیگه. همین گفت که پاک پربردگار، پدیدار، زان لشکر نامدار، به دلسوزگی، بیژن گیف را. ببینید، گسته همون میدونه که بیژن باید بیاد ببینید، اون جز رمزه. اون رمز چیه؟ بلا، بیاری از آن در داستان ایران میاد. چرا دل مرا آب می‌کنید ها؟ ای خودم <تصفيق> <تصفيق> این رمزار گوشیدم در دل خودم مونده نزدیک فریاد بکشم. و دا داستان ایرانم چاپ نمیشه. من امیدوارم این فرزند ما ایمان که واقعا برای پلیاد و برای کار فرنگی زیاد که کار کرده این رو نبره یه خورده تحریک بشه. الان رفته سربازی نمیتونه کار بکنم یه خودت تحریک بشه نیم کار بکنه یه کاری بکنه که داستان ایران حداقل به, به نموشک کتاب برس. اسمش ایمانه؟ ایمان خدا فرد. بله. آقای ایمان دیگه دل رفت دیگه غیر فایم میاد داستان ایران چی شد؟ داستان ایران چی شد؟ بیا اومد خمیده به زین اندرون همین راند اسب و همی ری خون به پیچید و قلطیب بر, بر تیر خاک سراسر سر همه تن به شمشیر چاک. همین گفت که پاک پروردگار پدید آرزان لشکر نامدار به بلتوزگید بیژن گیو را اوگر دل یکی نیو را که گر مرده گر زنده زین جایگاه گر اینجای به منیه که یا مرده یا زنده این حق در عبسته بوده حقه. حکر شد در پهلوی شد اگر شد ار، در انگلیسی شد اور یعنی یا که گرمورده گرزنده زین جایگاه برد مرمرا سویه ایران سپاه بدان تا بدانند من جز به نام نمردم به گیتی، همین است ام این میخوام فقط بدونن که من دو تا پهلوان رو کشتم بعد خودم کشه شدم همه شب تا روز پاک پر از درد چون مار مار پیچان به خاک اینجا دویت هست که این دویت رو کسانی که دارن در زیرنویس صفحه 133 میبینن اون طوری که من از روی این بیت درست کردم اینه چون بی جنبی آمد بدان مغزار در رو را بدیدن در آن خانسار خان یعنی چشم سار خان خانیک خانی اینا هم یعنی چشمه از ریشه خی اوستایی گرفته شده خا اوستایی گرفته شده یعنی چشمه که در کردی کانی مونده میشه در فارسی در واجه خانی آباد هنوز حسینی که بین این درایوهای قدیمی که دیگران اثر اثری ارزش ندیش یک جایی بود که دولاب بود یعنی با درب و آب در و اونها آب می‌کشیدن در اون دولاب در دروازه خودش خود کشار دولاب بله به دولابم یکی از اونها بود حالا آره شما نصاب سنتون دروازه رو بیاریدتون چون دیگه دولاب این منطقه خودمون منطقه زمین کارم طرف این مینوشهدا و طرف خیامون پیروزی اون رو خب اون چجوری دیدین اون خیارای دولاب و اینا مثلا همون جان یه بله یه بله میگفتم بهش شما به هر بچه تهران که می‌گفتید می‌گفت عجب خیارای دولاب‌ها دوزی به یزدان من یه دونه خیار از اونجا میافتم با وزگیر که سر داشت هم بود هیچ وقت که این, این کار نکردم ولی اون خیارار میدم. دو تا دو خیار در تهران قدیم بود یک خیار دولاب بود یک خیار شمرون بود بل. هر دو تاش رفته حالا خیارات بوتهایی دارند که نمازد درن هستیم و خوشبا... ولی خوشبختانه مردم ایران به اون طرف گرایش پیدا نکرده و خیاره طبیعی بیشتر ماست و ترکوی کم کم اون داره شکست میخوره امیدوارم که یک چنین چیزای دارن ولی یه سری غنیمن نیم تیزرس میشوند گلخونیه و هیچ چی نداره هیچ چی نداره کار اینکه اون دو با دل هم کشیده بشه چهره بله. و دل بعد پایه بله. دلب عربی شده دلب عربی شده دول در زبان فارسی یعنی همون سطل برد. بعد به دلیلی که در واجه دولا باقی موده بعد از اون پایین تر یه جا بود قنات بود که نزدیک میدونه اعدام اینا که قنات آباد که اونجای آب میمد به سطح به نزدیک به جایی که بیشد قنات کشید اینقدر امیغ نبود بعد از اونجا میرفت پایین تر میشد خانی آباد که خانی آب دیگه پیرو. الان خونی بود محلش هنوز هست قنات بود قدیمی ها البته میدونن کجاست دولابم که شما میدونید کافیه این آب دستجری زمین بود و این طور می بالا بود localhost خانی که خانی یعنی چشمه خانسارم چشمه سار که در اسم شهر خونسارم هست خونسارم خیلی چشمه داره من چشمه خان... چشمه من نرفتم خونسار ولی شنیدم اینطور این در چند شهر دیگه هم هست که نام ها مثلا کن که خیاب که یعنی جایدو خی خیاب یعنی چشمه چون که در رژیم پیشین نمیدونستن خیاب چقدر معنی خوب داره اسمشو کردن مشکین شهر در نام هم که بعد از انقلاب برگشت اینو بر نگشت بعد, بعد خواه خیوه خیوه در خارزم اینا همه نشانه چشم است. خب اینجا پس بنابراین بیت دو بیترو این من تحصیل کردم تو بی جنبی آمد بدان مقزار من رو رو بدیدن داران خانسار بران خستگیهاش بنهاد روی همی بود زوری کنن پیش اوی خدمت رو که استاد فریدون جنیدی برای ما از شاهنامه فردوسی میخوانند شاهنامه فردوسی رو برای ما میخوانند شما شاهنامهاتون باز باشه و سوالاتتون هم هست سوالهای شما هم اینجا هست سوالها قلطه سوالهای پرسش های شما عوض هم هست <تصفيق> و عرض میکنم موضوعتون که حالا من خواهم خوند 224 185 224 هشتاد و پنج، دیویست و بیست، پانسد و هشتاد و هشت، دو صفر و شماره پیامک سی هزار، پانسد و پنجا و هشت، سی هزار، پانسد و پنجاه و هشت، داستانی که پیمی گیریم نبرد گسته هم و بیجن با فرشیدر و, و زه، نه، لخاک، لخاک، بله، اشتاد درای ما، اشتاد جنیدی خواهند خون. ما سعی می‌مشتم در خدمتتون، خواهیم بود. درود به استاد جنیدی و آقای هدایتی موجی محترم هم از استاد این است که از نام هایی که در شاهنامه برده شده کدام یک شخصیت حقیقی و کدام یک نماد هستند اگر می شود استاد به هر نامی که می رسند بفرمایند آیا نماد است یا شخصیت حقیقی با سپاس سحرایی از کرماشان درود و شما از آغاز همه نماده و اشاره به یک دوری از زندگی یا دوری از جان جهان داره مثلا کیومرس یعنی دور پیدایی جان که همراه با مرکست یعنی این یه دوری خیلی بزرگی رو دربر میگه بعد هوشنگ دوران خانه سازی بشره هوشنگه یعنی خانه خوب تحمورست تخمورید در تخم تخموروپه یعنی رو باینده پهلوان دوران که جانورانه نه هم طور میاد جلو تا وقتی میرسه به فریدون که سبهر شدن آریاییانه و بعد از منوچر به اشاره به تیراست دیگه از منوچر به این طرف همه اشاره به تیراست تا وقتی که میرسه به دارا به داراب که هم کروش باشه دیگه از کروش به این طرف نامها ارزش میشه سلام مونده نباشید خدمت زبان گیلک بیشتر است یا کردی اول مجتبی دفیزاده رو بات کردیم. درود بر شما هر دو دو شاخه از زبان‌های کهن ایرانی هستن و هر دو زبان زیبا و دلنگیز هستن. خب در زبان کردی هم. ما خود مثلا داریم کردی اورامی خود کهن‌تر از سورانیه. یا کردی شمال اصلا با این دو تا فرق داره. اینا هم مثلا با گیلکی یا با بلوچی اینا شاخه‌های یک درخت سال هستن. که اندکی با همدیگه فرق داره ولی ریشهشون همه در ریشه همون درخته و کوهندترین زبان جهان زبان نیاکان ماست که اتفاقا در باره پدید آمدن زبان هم معتبرترین درستترین رویداد در شاهنام آمده که من روشی گفتم در کتاب زندگی و ماجد آریان پیشتر گفتم به صورت خیلی مفصلتر در, در کتاب داستان ایران هست برقا استاد جنیدی آیا ایرانیان دارای یک گاه شماره چند هزار ساله هستند بابک از گرگان بابک درود باشه شما شما چرا این سخنه میگیرید گاه شماری از آن ایران معتبرترین بهترین گاه شماری از آن ایرانه پس از اینکه نیاکان و ما در هزار سال پیش هزار سال پیش صورت‌های فلکی دریافتند پیدا کردند گاه شماری رو من امیدوارم که در بر برنامه نوروز در این باره با شما صحبت کنم بعدم هم همواره ما شماری داشیم. تا این خیام پدید اومد و با محاسبات بسیار دقیق پیدا کرد که شش ماه اول سال به جای سی روز سی روزه، یک روزه یکی دو بار من در این باره توخن گفتم و شام گاهنامه گیرگوالی که از روی خیام اومده بسیار نادرسته و من اگر به جای اروپایی بودم شرم می میمد از این در حال گاشماری نادرست غیر علمی که همطور طور هم ادامه میدن گرچه چند سال پیش یونسکو و سازمان ملد و بسیاری از افراد گفتن که اگر گاه شماری باید باشه گاه شماری. همانا گاه ایرانه که پایه حرکت درست زمین برگرده خورشیده عزیز من بابک نیاکان تو بزرگترین مردان و زنان جهان بودن میگن منظورشون فکرمه میدن چرا نشده چرا مدون شده؟ همین گاه شماری که ما داریم چرا مدعون نیست؟ عدیب بهتر چی؟ که سر ساعت سال تبیل میشه اینا رو خیام با همکاراش بده کردن م. اصلا هیچ اتیاج به کبیسه نداره هیچ چی. همه چیز درسته یعنی علمی ترین شماری جهان الان گاه خیامیه خیامی ماست بله. بله. پهلوان قوم فارس در شاهنامی کیست؟ پهلوان قوم فارس داراب کروش از هر بالاتر و اه... قیمت های دیگه ای که اگر اجازه بدید در فرصت دیگه ای من بخوانم مستاد میخوام از روزتون خواهش کنم که ادامه داستان رو داشته باشیم و بشنمیم از شما بیجن میرسه با بالای سر گستم برام خستگیهاش بنهاد روی همی بود داری کنان پیش اوی همی گفت که این دل یار من تو رفتی و این بود پیکار من شتابندرین بیش بایست کرد که یارت همی بودمی در نورد. من برگردونم که شدابند در بیش بایست همی که در جنگ یارت همی بودمی. به گفتین سخون بیژن و گستهم به جنبید و برزد یکی تیزدم یعنی آه کشید. به بیژن این گفت که نیک خواه مکن خیشتن پیش من در تباخت. یکی چاره کن تا از این جایگاه توانی رسانیدنم نزد شاه. مرا با چندان همین روزگار که بینم یکی چهره شهریار از آن پس چو مرگ مرگایدم باک نیست مرا خود نهالی به جز خاک نیست نهالی یعنی دوشک در خورستان باقی موده نالیچه یعنی دوشک چه دیگر آن دو ودخواه با ترس و باک که بر دست من کرد یزدان حلاک کنین از شاه جهاندار یاد که من سر به خیره ندادم بباد. پسودم به هر جای با بخت چنگ. گه نام جستن نمردم به ننگ. به ویژن نمود آن زمان هر دو تور که بودند کشته فکنده بدور. از آن جاگه اسب او بیدرنگ بیاورد و بخشاد از باره تنگ. تنگ زین رو گشود بر اینکه بتونه نمت زین رو چه بکنه و این گستم رو روی این بدازه چون با روی زین نمیتونست که این گستم رو روی اون بگذاره نمت زین به زیر تن خفته مهر بیفکند و نالی چندی به درد همه دامن غرته رو کرد چاک ابر خستگیهاش بربست پاک اینجا در تمام نسخه ها قورته اومده با تای دست دار. اما ما باید بدونیم که این واژه واژه محبی کورتک کورتک یعنی روپوش بالا پوش و این وقتی معرب شد ربه از اون قورتق ساختن. بعدا خود کورتک تر شد به زبان فارسی شد کورتته که الان در تازستان میگن کورت هنوز. این کورته رو باز رب معرب کردند کردن, کردن قرته. و در این نمونه ها همه اینجا قرته با قف اومده ولی خب باشه قرطه در داستان بحرام و تجاب اگه بیاد داشته باشید بحرام هم رفت که برای نام رفت و سرشو داد که اون تازیانش افتاده بود در اونجا ببینیم قرطه هست بنابراین نویشتی شاهنامه قرطه بوده ولی خب نویسندگانده که بعدا قرته نوشتن. همه دامن کرتک را کرد چاک اول خستگیهاش بر بست پاک اوزانجا بی بیامد به کردار گرد دمان سوی لحاک و فرشید ورد به دیدان سران و سپه را نگون فکنده آن خاک درقه بخون آنجا سوی گسته هم تازیان میبینید که نگاه کرد تا ببینه که اینا واقعا مردن یا نه یعنی میخواد گواهی بده گواهیش براست باشه از سوی گه هم تازیان آضیان بیا به ساون پلنگ ژیان فرود آمد از اسب او او آزار نرم از برزینه ها. سند 90 همی راند نرم بر همی همین آفرین خواند گرم آفرین نمی یعنی دل, دل, دل دادن بهش یاری کردن که امید داشته باشه. مگر زنده او را برای شهریار تواند رسانیدن از کارزار چون از روز نور ساعتا در گذشت خور از گمبت چرخ گردان بگشت میدید و تابستون بوده نور ساعت با ده گرده که به ساعت دوازده برسه و خورشید از گمبت چرخ این از ساعت دوازده که به طرف خوربران یعنی غرب متمایل بشه جهاندار خسرو به نزد سپاه بیامد بدان دشت آوردگاه هزیره شدن سر سرسران همه نامداران و جنگ آوران زدادار بر پهلوان آفرین همیخاند و بر لشگرش همچنین یعنی که خسرو بر گودرز و لشگر ایران اینجا مقداری؟ بادم اینو حفظ دارم بله حفظ دارم محنان رویه چند هستی؟ محنان رویه 139 بالان از 119 شروع کردیم ما الان 139 هست ببود شاه چندی بدان رزمگاه بدان تا کند کار ساز کار سپاه فرستاده آمد به نزدیکی شاه خردمند مردی مردیز توران سپاه یعنی تورانیانی که هنوز نرفته بودند که ما شاه را بنده و چاکریم زمین جز به فرمان او نسپریم جهاندار داند که ما خود گیم یعنی که خسرو میان تنگ بسته بحر چین یعنی برای چی میون تنگ بستیم اومدیم به جنگ تقصیر ما نبود نبود مان به کار سیاه گناه ببرد اهرمن شاه را دلزرا یعنی افراسیاب را گناهکار ماییم و او پاچه از او هرچه به ما بر رباست چوبش نید گفتار ایشان به درد ببخشود ایشان شاه آزاد مرد بفرمود تا پیش او آمدن بران آرزو چارجو آمدن همه برنهادن سر بر زمین پر از خون دل و لب پر از آفرین. از آن پس خروش آمد از دیدگاه که گرد سواران برآمد آمد زراح. همه نامداران ایران سپاه نهادن چشم از شگفتی برا ببینید اونجا دو سوار بیشتر میست ولی اینجا میگه گرد سواران پس ها. باید ببینیم که بیژن و هم اینا نماد تیرههایی هایی هستن یعنی یه شخص نیستن با سخف همین که نماده هست یعنی هنوز اینجا ما نماده همه نامداران و ایران سپاه نهادن چشم از چگفتی براه که ترکیشت از مرز توران زمین که یارد یعنی یارد یعنی بکنه گذشتن بر این دشت کیم همان در زمان بیژن آمد دمان به بازو به زهبر فکنده کمان چو بیژن به نزدیک خسرو رسید سر. تاج و تخت بلندش بدید دید ببوسید و خاک بینهاد روی بشد شاد خسرو به دیدار روی بپرسید و گفتش که ای شیر مرد کجا رفته بودی زدشت نور ز بی بیژن سخون یاد کرد زلحاکو از گرد فرشید ورد بفرمود پس شاه آزر جوی که بردند گستن را پیش اوی یکی بوی مهر شنشاه یافت به پیچید و دیده سوی او بتافت ببارید از دیدگان آب مهر سپهبد پر از آب و خون کرد چر دو هفته برآمد بران خسته مرد سر آمد همه رنج و سختی و درد که من پیشنهادم که پیوست و برخاست آزار و درد برستش بپردن نزدیکی شاه چو در رو کرد لختی نگاه و ایرانیان گفت که کردگار و بعد هر کسی شاد و بهروزگار به پیروزی در غم گسته هم نکرد این دل شادمون را دو جمع و بالاخر اون پیروزی ایران با زنده موندن و گسته هم ادامه پیدا کرد توفانی سوال عجیبی ما داریم در استادید و شما شنوندگان عزیز و پرمک های زیادی اومده که من اینو در همینجا بگم پاسخ رو گفته باشم چون خودم باید بگم خدمتون خواستند قصد که شاهنامه شما رو رست بیانند پرسیدن چگونه یا کتاب شما رو که شما تعریف فرمودید و در داستان ایلان هم گفتن که باست ما پاسخ خوفتیم شما خودتون پاسخ خفتید من در اینجا تلفن بنیاد نشاب رو خدمتون ارز کنم. شما میتونید از این طریق شاهنامه که استاد فریدون جنیدی ویرایش کردن رو به دست دید و کتاب های استاد رو شما تماس بگیرید اونجا و برید بخرید تیه کنید هشتاد و هشت بیست و هفت هشتاد و چهار شما تلفن بنیاد نیشابور هست هشتاد و هشت نود و شش تلفن های شما آماده هست پیامک های شما اینجا هست اگر اجازه دو فکر من داستان تا همین جا که ادامه رو در هفته آینده درت شما از. با درود به استاد و آقای هدایتی لطف کنید معنی باجی گوش گوج گوج تهک درست میگن؟ گوجاستک گوجاستک گوجاستک را بفرمایید شاد باشید کامران از تهران گوجاستک در زبان پهلوی یعنی ملعون اون چیزی که امروز میگن ملعون و این صفتیه که برای اسکندر ایرانیان دادن برای که تمام آثار فرهنگ ایران از رو همه دانشمندان رو به دار کشید تمام کتاب‌ها سوخت خاکستر ریخ به دریا و این بزرگترین ستم را به تاریخ و فرهنگ جهان کرد از اون اندک کتابهایی که که در گروسته ها باقی مونده بود که بعدا فرمان و شد 21 نسک که از اون 21 نسک هم بعدا دیگه بازی مقدارش از بین رفت 5 نسک باقی مونده ما از اون 5 نسک شگفتی ها و پیدا میکنیم در دانشین نسبت به جهان که اینا در کتاب داستان ایران مطرح میشه ببینید این کار اسکندر چی بود همه چیز را آتش داد و همه را از بکرد گجستک به فارسه شد گجستک سلام اصطور دارید معنی اسم شیرین شیرین شیرین نیدیگه که گوهی چهر ما بخونید که شیرین شیرین دروت نینجا... <تصفيق> در استاد فیدون جنهدی زبان پارسی باستان به کدام یک از گوشه... گویش های کنونی ایران از نظر لحجه نزدیک تر است نرگس خانم از تهران گفتند دروت به شما در زبان پارسی باستان هفتاد دو دو گونه سرفی داشته که اینها از زبانهای امروز ایران اون رو جدا میکنه منطور واجه ها خیلی وقت هست که یه واجه هست توی زبان های عمومی هست نمیشه که کدام زبان نزدیکتر همینطور که پاسخ دادم درباره باره گیلکی و کردی همین پاسخ درباره همه زبان ها هست یه وقت یه زبان تو همین زبان سهرانی ما ما سرم میبینیم که یک واجهی به کار برده میشود که در گویش های دیگر نبوده واسه واسه یعنی برای حالا دیگه همه از روستوها اومدن همه واسه باسه میگن ولی این واژه متعلق به تهران بود در هیچ جای که ایران گفته نمی شد میبینیم که این دگرگون شده وصناد پهلوی کوهنه فقط در با این که زبان تهران تغییر زیاد پیدا کرده بود منطقه بازم خیلی واژه ها داره که درسته مثلا فرض کن که واژه پنهان در پهلوی بود پتنیهان مخ... ساده شد پنهان های قدیم مادر بزرگا میگن پنوم پنومش کرد پنوم بکون پنه گفتن در حالی که جوهای دیگه همه میگن پنهان این ریشه بونا هم تو که از کردم شاخه های درخت عظیم هستن که اینا همه به ریشه پیوسته عوامل برنامه فهنگ استاد عرجمند جناب آقای جونیدی خواستم از حضورش رو سوال کنم در برای کلمات سرع و پریکا توضیح بپرماین با تشکر محمد حسن سلیمانی از نیشابور سرع اوشه باجه از دو تشکیل شده اول سرع یعنی سرودن قوشه یعنی نیوشیدن یعنی اون چی که فرمان یزدان هست انسان از درون خودش بشنوه و این شنیدن فرمان یزدان در آنیب ها هست در مورچه هست در همین که آنواران هست منطقه کم کم بشر خاطر که خودشو جدا کرده از فرمان اون یزدان کم کمتر میشنبه این واجد در زبان فارسی به سروش در حقیقت تغییر پیدا کرد و چون که جبرئیل هم اینکه فرمان یزدان رو در دین اسلام بیان میکرده این شد لقب جبرئیل ولی اصل همون سرعوشه یعنی شنیدن فرمان یزدان از درون و بعد پریکا پریکا پیریکا بوده پریکا یعنی یه موجود خیالی افسانهای بوده که ظاهر بسیار زیبا داشته و باطنش نادرست بوده و این رو ما در دا داستان هفت خانه رستم در جامعه همون زن جادو می بینیم که بسیار زیبا و فریبنده بود اما وقتی که رستم نام یزدان رو بر اون چهرهشت اش شد و بسیار زشت شد پیریکا که ظاهر زیبا و با باطن نادرست سلام و درود فرهی چطور تلفظ می‌شود آیا در فارسی تلفظ مشدد داریم تامین خانم تامین خانم داریم من دیگه میاد که با خودم وقتی کوچیک بود پهلوی میآموختم اون برره گفت که چیز تشتیز که در زبان فارسی یا پهلوی نبود باشه گفتم خوب بره بر گفتم خوب بر گفتم خوب اره. گفتم خوب اره و بره گوزم خوب دره، گوزم خب اره در خب و دره در و بره بر گوزم خب تو هر جا با من بگم تو مخوی همین رو به من بگی؟ بله. به خب بله تشتید در فرسی هست فرراهیم به همین ترتیب درتیب بیان میشه بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب و تشکر از درنامه خوبتان دوست داریم زندگی نامی از دکتر جنیدی عزیز بدانیم و اینکه چند سال است روی شاهنامه کار میکنند و منابع اصلی ایشان نفقه هایی میباشند با تشکر سید حسین صالحی غه از چهار محال وقتی باید من این کار رو و یاد شما بود انشالله سعی میکنم هفته آینده در آغاز برنامه یه گفتگوی کتاه باز با استاد جنوی داشته باشم و دیشان بپرسم و حالا به مرور سعی میکنم از استاد بپرسم که اهل کجا هستند و ایشون اهل اون هستند ولی حالا بیشتر از استادیم در آغاز برنامه من این رو پرسیدم پارسا. یک سال بودشته امسال حتما دوباره شروع پرستی بودشته. من عرض کدم خاک ایرانم <تصفح> در مرگی من در نشهور به دنیا آمدم من خاک ایران هستم تلفن رو بردیر سلام باشیم شما وقت شما بخیر. واسه من یه سوال این آقا این سرکان سویسرکان زنگ میزنم. واظع معنی توی سرکان چی هست؟ و این ریشه‌های زبان‌های فارسی و کردی یعنی با لوری این ستا چه چه هایی با هم دیگه دارن چون ما توی منطقه زندگی میکنیم که کردها و لورها خیلی نزدیک هم هستن و خیلی کلمه‌های مشترک ما داریم. خواستم اگه زحمت این دکتر جواب من بدن تشکر می‌کنم. من جاوید هستم از سرکان. درود بر شما کردی و لوری و توی سرکان و غرب ایران همه فرزندان و گودرز هستن جهان ایرانی که در نوشتهای غربیان با نام گوتی ازش میاد شده در پهلاوی گوترز و در فارسی گودرز شد شما همه به هم پیبستین و همه تون باز به همه پیکر ایران بابسته همه با هم از ریشین ارجمندمون ایران و باستان هستیم توی سرکان هم کان یعنی درباری این بخش دیگهش باید دقیق میشه با. کیومرس همون کیامرس است متشکرم علی کیومرس در عوستازگای امرتا یعنی جان میرا من در همین شاید میتونم بگم به 20 دیگه پیش اینو گفتم جان میرا یعنی پیدا شدن جان در جهان که همراه با مرگه ببخشید من در رابطه با همین موضوع برنامه و موضوع شاهنامه میکستم بپرسم که واقعا قهرمانان شاهنامه هم وجود خارجی داشتن یا نه روست مثلا و دیگران وجود خارجی داشتن یا نه اگه نداشتن واقعا چرا پردوسی با این همه زحمت سال وقتش رو سرف کرده صرف ساختن و پرداختن جهره کرده که اصلا وجود نداشتن ببخشید متشکرم به دید منفی به خودتونم نگاه کنید وجود ندارید شادانم فردوسی فردوسی از خودش نساخت اینو بارها من گفتم یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بحری برده هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیل و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار و نخوس که سخونها همه هم این پهلوان آنو شهروان ابو منصور محمد عبدال و به عبدالرزاق توسی است که به یاری چهار سه نفر از خراسان، و یک نفر از سیستان که نامشونو گفتم بزرگ باران از پهلوی ترجمه کردن به فارسی ابو منصور و معمری اینا رو به نصر دلپذیر فارسی در برد که این کتاب الان در دست نیست ولی پیشکفتارش در, در مقالات علامه غزوینی هست اینها به دست دقیقی افتاد بعد از دقیقی فردوسی آغاز کرد این نام ها درسته از کیومرس گرفته که جهان میرا باشه تا. دوستم ورخزاد همه اینا درسته تا در بعض از مراحل اشاره به تیره ها و مثل که شما اصلا گوش این برنامه رو نه این تلفن من خواستم همینم arz کنم ایشون تل... زمانی تلفن زدن که اون سوالو شما پاسخ دادیم من پیامکی که خونده بودم در مورد نمادخوا و حقیقی بودن اونها ایشون قبل از اون زدن تماس گرفتن و زنگ زدن و اون موقع پخشو تلفن بعدیرو میشتیم استاد اگه اجازه بفرمه. زند خاستم بپرسم که در گذشته برای استنساخ کتاب چه میکردند و سال دومم اینکه چرا خطی که ما ایرانا برای ملت عرب در واقع ابدا کردیم چرا این خط یهو خط خود ما شد با تشکر بهرا وزید درود بر شما به سسخ کتاب همینطوری که بوده تا پنج و سال پیش در زمان باستان هم بوده و ما بسیار های داریم کهم میگه فلان کتاب چه مطلبی نوشته بنابراین تغییری پیدا نکرده و بعدم این خط که شما میبینید خط پهلوی بوده که تغییر پیدا کرد به صورت خط عربی در اومد به خط پارسی هم در اومد و ما مستقیما مدخ... از خط پهلوی نشت گرفته خط بیگانه نیستش خط عربی هم همطور برای که ما می دینیم تا زمان عبدالملک بربان خط عربی هم بوده دیوان ها هم همه را به خط پرلوی می نشتن. او دستور داد که برگردونن و کسانی بودن ایرانی اتفاقا که دبیر دی دستگاه دی دیوان اومبیان بودن اونا برگردون کمی تغییر دادن و خط عربی امروز ساخته شد این هم بالاخره کار ایرانیان بوده سلام از استاد سوالی داشتم در اسم یعنی اسمی هست که معنی آن یاری دهنده باشد ایار به فارسی در پلاوی بوده ادیار بعد این دیت تلفظش به یه تبدیل شد دو تا یه پلاو هم میاد تشجید گرفت شد ایار بعد ما کسانی که خودمونو باخته بودیم فکر کردیم اینو باید با این بنویسیم ایار در حالی که ایارا ایارا, ایارا ایارو در پلاوی اصلاً در عربی هستن ریشه نداره این عیار و گروه های ایاران و جوان مردان یار مردم ایران بودن که سر و جانشون رو فدای مردم بودن. سمک عیارو مثلا سمک عیاری بله یعقوب اللثیرا باشه بله سپاسگزارم از شما استاد می میجونیدی وقتی برنامه تمام شد مان تلفن ها مان پیامک ها خیلی هاش ماند اون دوست عزیز اون خانمی گفتیم پیامک رو نمی‌خویم نمیشه واقعا من میگم چندتا از همین ورخا همین رویهایی که بود الان 8 تا 7 تا رویه شده و نه من چند تا رو تونستم بخونم بازم همینجور تو فاصله باز انتخاب کردم و با توجه بحث و حالا اینکه هر کدوم مالی منطقی باشه و این تنوع وجود داشته باشه برای شما خواندم و شما پاسخ شما شماشاد باشه من به تمام یاران درود میفرستم درود و خرام و پیام به ویژه من امروز دیروز شنیدم از یک شاگردانم به نام مرنوز منتصری که در خوابگاه چون همدان همه توی اتاق جمع میشن و این برنامه رو گوش خب امیدواریم که دانشگاهشون توجه کنه اتاق بزرگتری بشون بده و درود به همه اون دانشجوها ضمن چند هفته پیشم از سنندج این تا امروز شين في در یک اتاق جمع میشن و این برنامه رو گوش میكنن درود به همه دانشجویان عزیز ایران در هر جای ایران که این برنامه سپاس گذارم از شما شاد باشید تقیی کننده برنامه آقای محمد رزا حای چه هیدری صدا بردارن آقای علی تاهری آقای نوردین هیدری استباتات آقای حسین چگینیزاده و نور نورالله هیدری و استباتات آقای حسین چگینیزاده صحراب ستویش منش همه برنامه آقای کازم میرواسمی و مهدی ابراهیمی منم حمید رضا هدایتی راد سپاسگزارم از شما ایرانیان که صدای ما رو شنیدید مردمان خدا حافظ